بحر قدرت چرخ در گردان کنی آلم از حکمتت حیران کنی سخت شاهی در جمی بر از هم زنی یا به جایش دیگری سلطان کنی امر کن از جانبت گردر یکون گرد خواهی لحظهی فرمان کنی సాధ బి రీపాయరి దీ నహి బయక ఆసీ کم دہی گہ مہنتے بے یار و مرا مہنت اندر ک بے درد چن جنتنی بارتا نے شب جامے مشکی دہی باچراں روز را تھا بنتنی بندے را در حلی ایمان کوشیت کرو ہاں ہے دی گریرا ننتنی در به سال دوستان شادی دمی, دمی یا که آدم در غم فقدان کنی کلبه اینا غرغ در شادی کنی خانه اینا کلبه احسان کنی راز پنهان در دمی اتشا کنی سر دیگر تا عبد پنهان کنی باہر پیران عمر تولانی دہی کود کیرا د اپنی خبر سن کو نی گر کہ ہا درد بھی درمان دہی درد دیگر دی دوا درمان کو در نی باہر حکمت دیدی گر آن کو نی سوئے دیگر چہرائی حنجان کو نی انی کی کن دیگری افضل دہی لوط فر در ایدیک سنتنی راہ گشای بہار مردانے طلب پی طلب زمراہ سرگردن کنی آدمی را از ملک بر تر کنی آدمی گمرا در ز حیوان کنی می زدائی اهل از دیوانگان اهل دیگَر مَادَنِ عرفان تو نی بحر بازی سفره رنگی دَهِ در کنارش سفرهی بینانت نی بنده ای را مالو سر بچ نی دحی دیگَری بر نان شب حیران تو نی نعمت خرشید و محطاب و هوا برگدا و پادشای کسان سنید هرچ مارا در نیاز استیشتر ای خدا بندات و ان ارزان کنید سحن دنیا خانه ای در ملک تو اسمسلم و کافر دران مهمن کنید آب انصاف از ذیری گلمی آبریکان جو را در ثانه ویران کنی مادری را سردی چشمان دنی مادری در داه فرزندان دنی در عذاب سیل و آتش یا هزار یا که خاهی در دمی طوفان کنی بار خلیلن را راد شنکنی بحر موسی چو به اصبان کنی هر نبی را حکمت و برهان دہی بحر احمد معجزه قران کنی نازد سودین مبین شود شون عزیز هر نبی را بحر او قربان کنی تان خواهی بندئی راهی روید راه او را سخت بی پایان کنی چونکه یا بد راه در شب آدمی نجم را در آسمان رخشن کنی تان خواهی بندئی کاری کنید تار او را سخت بی امکان کنید قادر موتلا تو ہنسے اے خدا نسان جانی کہ انت وندونی بحر آدم شادیو ہم حکمت اس گر بے دانہ ہر درا احسان کو نی گر بے دانہ ہر درا احسان کو نی